پس سه‌اوی هزار یک شب شبی نهم دختر پاره از آب برکه که برداشته فسونی بر او بدمید. و آب به برکه برفشاند در حال ماهیان به صورت آدمیان برآمدند و بازارها به صورت نخستین بازگشتند و کوهها جزیرهها شدند پس از آن دختر به بیت الاحزان برآمد و کردار خیش به ملک باز نمود ملک آهسته گفت نزدیکتر آی دختر نزدیکتر آمده گفت ای خاجه پاید بگذار تا ببوسم چون دست نمیدهد در آغوش. در حال ملک تیغ بر سینه دختر زد، دختر دو نیمه افتاد. ملک برخاسته از خانه برون شد، جوان را دید که به انتظار ملک ایستاده. چون چشمش بر ملک افتاد، شکر به جا آورد و دست و پای او را بوسه داد.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 یک سال راه است ملک را تعجب زیاده شد ملک زاده بسیج راه سفر کرده با وزیر خود گفت که من قصد زیارت مکه معظمه دارم پس ملک زاده در موکب ملک یک سال همی رفتند تا به شهر ملک برسیدند و سپاه و رعیت به استقبال ملک شتافته سم سمند ملک بوسیدند و به سلامت او شادان شدند ملک به قصر اندر آمده بر تخت بنشست و سیاد را بخواست. خلعتش داده شماره فرزندانش باز پرسید سیاد گفت پسری با دو دختر دارم ملک یکی از دختران او را برای خود و دیگری را از برای ملک زاده جادو گشته تزویج کرد و امارت لشکر به پسر او سپرد و حکومت شهر ملکزاده و جزایر و سود را به سیاد تفویز کرد و به کامرانی به سر بردند تا مرگ به دیشان در رسید و این حکایت عجبتر و خوشتر از حکایت حمال نیست و آن این بود که دکایت حمال با دختران در بغداد مرد عذبی بود حمالی میکرد. روزی از روزها در بازاری ایستاده بود که دختری خداوند حسن و جمال پدید شد به دانسان که شاعر گفته مشک با زلف سیاهش نه سیاه هست و نه خوش سر با قد بلندش نه بلند است و نه راست او سمن سینه و نوشین لب و شیرین سخن است مشتری عآرض و خورشید رخ و ظهره لغاست و با حمال گفت سبد برداشته با من بیا حمال سبد بگرفت و با دخترک کمی رفتند تا به دکانی برسیدند دختر یک دینار درآورده مقداری زیتون خرید و به هممال گفت این را در سبد بنه و با من بیا. هممال زیتون در سبد گذاشت و سبد برداشته همی رفتند تا به دکان دیگری برسیدند و آنجا سیب شامی و به امانی و انگور حلبی و شفتالوی دمشقی و لیموی مصری و ترنج سلطانی از هر یکی یک من بخرید و به هممال گفت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 ده رتل گوشت خریده به حمال سپرد و همی رفتند تا به حلوایی رسیدند دخترک همه گونه حلوا بخرید و با حمال گفت اینها را در سبد منه. حمال گفت اگر با من گفته بودی خری با خود آوردمی که این همه بار گران بکشد دختر تبسمی کرده روان شد همی رفتند تا به بازار اتاران رسیدند از اطریات از هر یکی یک شیشه خریده به حمال سپرد بعد از آن به دکان شماع برسیدند ده رتل شمع کافوری خریده به هممال بداد هممال همه آنها را در ثبت گذاشته دلاله از پیش و حمال به دنبال همی رفتند تا به خانه محکم اساس بلند کریاسی رسیدند دلاله در بکوفت دختری نکوروی در بگشود حمال دی که دربان دختر ماه منظر سیمینبری است چنانکه شاور گفته پرداخته از شیر دو گلنار سمنبوی انگیخته از قیر دو سیه سیحسار جعدش چو یکی هندوی آشق که به رویش حلقه زده از کفر و شکیبا شده زنار حمال از دیدن او سوس گشت و نزدیک شد که سبد از دوشش بر زمین افتاد با خود گفت امروز مبارک است فالم پس به خانه اندر شد دید که خداوند خانه دختری است از هر دو نیکوتر به فراز تختی برنشسته و در خوب خوبرویی چنان است که شاعر گفته نگار قند کورا بود در زلف سی چین چو او یک بط نبیند کس به چین و قنده هارندر خمار چشم او تا هست زیر قمزگ جادو شکنج زلف او تا هست گرد لال زارندر بود جانم بران هندو دو زلف پرشکن خرسند برد هوشم بدان جادو دو چشم پرخمار اندر دختر از تخت به زیر آمد و گفت چرا این بیچاره را زیر بار گران اید. پس دخترکان با هم یار گشته بار از دوش حمال به زیر آوردند و سبد را خالی کرده هر چیزی را به جای خود گذاشتند و دو دینار به حمال داده گفتند بیرون شو حمال به حسن و جمال دخترکان نظر کرد و از اینکه مردی به خانه اندر نبود و همه گونه خوردنی و می و نقل آماده داشتند دل به بیرون نمی نهاد دختران گفتند چرا نمیروی؟ اگر مزد کم گرفته ای یک دینار دیگر بستان هممال گفت نوالله ده برابر مزد خود گرفتم ولیکن در کار شما به حیرت اندرم که شما بدین سان چرا نشسته اید و در میان شما از چه سبب مردی نیست تا با شما اونس گیرد و زنان را بیمرد ایش بسی ناتمام است و گفتند که سقف را چهار پایه باید تا دیر پاید اکنون شما ستن هستید و از چهارمین تن ناچار است که مرد آزاده عاقل و سخندان و رازپوش باشد دختران گفتند که ما را بیم است از اینکه راز خیشتن به هر کس فاش کنیم و ما از گفته شاعر سر نپیچیم که گفته است نخست موعظه پیر مجلس این حرف است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید حمال گفت به جان شما سوگند که من بسی امینم نیکی ها بگویم و بدی ها بپوشانم منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن منم که دید نیالوده ام به بد دیدن به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات به خواست جامعه میو گفت راز پوشیدن چون دختران سخن سخنگفتن فسیح او را بدیدند به او گفتند تو میدانی مالی بسیار به این مجلس صرف کرده ایم اگر تو را زر نباشد نخواهیم گذاشت که در اینجا بنشینی و بر جمال صبیح و ملیه ما نظاره کنی مگر نشنیده ای محبت بیزر درد سرست و به عاشق بیمال اقبال نکند حمال گفت به خدا سوگن جز درمهایی که از شما گرفتم چیزی ندارم آنگاه دلاله گفت ای خاهران هر وقت نوبت به دور من به جای او قرامت کشم پس ایشان سخن دلاله بپذیرفتند و حمال را به ندیمی برگزیده به بادگساری بنشستند دلاله قرابه پیش آورده پیاله بگرفت ساغری خود بنوشید و دو پیمانه به دربان و خداوند خانه و پیمانهی به حمال بداد حمال ساغر بگرفت و این شعر بخواند شراب لعل کس و روی مهجبینان بین خلاف مذهب آنان جمال اینان بین و این بیت نیز بخاند اگر نباد قم دل زیاد ما ببرد نهی به حادث بنیاد ما زجاب ببرد پس از خواندن شعر دست دخترکان ببوسید و قده بنوشید قدهی دیگر پر کرده در برابر خداوند خانه ایستاد و گفت ای خاتون من تو را مملوک و خادمم من ایستاده‌ام نک به خدمتت مشغول مرا از این چه کتاعت قبول یا نقبول خداوند خانه گفت بنوش که تو را گوارا باد حمال دست او را بوسه داد و گفت نعیم روزی جنت به ذوق آن نرسد که یار نوش کند باده و تا گوی نوش به می کشیدن و قزل خواندن و رقص کردن همی گذراندند تا اینکه مست شدند دلاله برخاسته جامعه برکنده و خود را به حوزی که به میان قصر اندر بود افکند و در آب شنا همی کرد تا اینکه شسته بیرون آمد و در کنار حمال نشست و بعد دربان خود را شسته آمده پهلوی حمال نشست و در آخر صاحب خانه خود را شسته و پهلوی او نشست و به شوخی و لحو مشغول شدند سبد اینجا رسید آمداد شد و شهرزاد لب از داستان فروب است